اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين به هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزیش بر عهده خداست و او قرارگاه و مکان دفنش را میداند همه اینها در کتابی روشن است. و هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 و او کسیست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک از شما به عمل نیگوتر است و اگر به آنها بگویی شما پس از مرگ برانگیخته اختمی شوید مسلمان کافران می گویند این سخن جز جادوی آشکار نیست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 و اگر تا زمان محدودی عذاب را از آنها به تأخیر اندازیم البته از روی تمسخر میگویند چه چیزی مانع آن شده است آگاه باشید روزی که عذاب به سراغشان آید از آنها برگردانده نخواهد شد و آنچه را به مسخره میگرفتند آنان را در بر خواهد گرفت ولئن عذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لیئوس و اگر از جانب خیش رحمتی به انسان بچشانیم سپس آن را از او بگیریم همانا او بسیار ناامید و ناسپاس خواهد شد ولئن أذقناه نعمة بعد ضراؤه مسّته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخو و اگر پس از رنج و سختی که به او رسیده است نعمت و آسایشی به او بچشانیم البته میگوید سختی ها از من دور شد همانا او شادمان و فخر فروش می شود الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولائك لهم مغفرة واجر کبیر مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند آنان برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است فلعلك تارکن بعض ما یوحا ایلیک و صَدْرُكَ به صدر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 پس ای پیامبر، شاید برخی از آنچه چه که به تو وحی می واگذاری، و سینیت از این جهت تنگ و ناراحت شود که گویند، چرا گنجی بر او نازل نشده یا فرشتهای همراه او نیامده است، تو تنها هشدار دهنده ای و خداوند بر همه چیز نگهبان است، أم يقولون افتراه قل فاأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقن آيا مگويند قرآن را از خود بافته و به خدا نسبت داده از بگو اگر راست میگویید شما هم ده سوره به هم بافته مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که می توانید بیاری به طلبید فا این لم لکم فعلمو انما اون علم الله اله الا هو فهل انتم پس اگر آنها دعوت شما را نفذی رفتند بدانید که قرآن فقط به علم خدا نازل شده است و این که هیچ معبودی جز او نیست پس آیا شما مسلمان می شوید؟ من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی إليهم اعمالهم فیها و هم فیها لا يبخسون کسی که زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهد پاداش اعمالش را در این دنیا به طور کامل و تمام به آنها می‌دهیم و چیزی از آنها کم و کاست نخواهند شد اولائک الذين ليس لهم في الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و ما كانوا اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش جهنم نصیبی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا انجام داده اند برباد رفته است و آنچه را عمل می باطل است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 و من يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تکفی مریت منه اینه الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون آیا کسی که از سوی پروردگارش دلیل روشندارد و به دنبال آن شاهدی از سوی او باشد و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود بر صحت آن گواهی دارد همانند کسی است که دلیلی ندارد اینان به آن قرآن ایمان میآورند و از گروه‌های مختلف هرکس به آن کافر شود پس آتش پادگاه اوست پس تردیدی در آن نداشته باش بیگمان آن حق است از جانب پروردگارت بلی کن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. و من أظلم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهداء أولئك الذين كذبوا على ربهم و چه کسی ستمکار تر است از کسی که بر خدا دروغ می‌بندد؟ آنان روز قیامت بر پروردگارشان عرضه می شوند و گواهان می‌گویند، اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند هان، لعنت خدا بر ستمکاران باد الذین يصدون عن سبيل الله و عوجا هاي و هم وهم كافرون. همان کسانی که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج به منحرف می‌جویند و آنان به آخرت کافرند.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 اینان هیچگاه نمی توانند در زمین خدا را آجز کنند و جز خدا دوستان و یاورانی ندارند عذاب برای آنان دوچندان خواهد شد توان شنیدن حق را نداشتند و حقیقت را نمیدیدند. دیدند اولائی اینان کسانی هستند که به خودشان زیان زده اند و آنچه بر برمی بافتند از نظر آنها گم شدند لا جرم انهم فی الاخرات هم الاخترون. بدون شک آنها در آخرت از همه زیانکارترند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبروا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بیگمان گمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به سوی پروردگارشان فروتنی کردند آنها اهل بهشتند آنان در آنجا جاودان خواهند ماند مثل الفریق این که والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا؟ افلا تذکرون این دو گروه مانند کور و کر و بینا و شنواست آیا این دو در بعض یکسانند آیا پند نمیگیرید؟ گیرید ولقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین و به راستی ما نوه را به سوی قومش فرستادیم و به آنها گفت همانا من برای شما حشدار دهنده آشکار هستم اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ جز الله را نپرستید همانا من از عذاب روز دردناک بر شما میترسم فقال الملأ الذین كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی وما نرا لكم علینا من فضل و ما نرا لكم علینا من فضل بل پس اشراف کافر قومش گفتند ما تو را جز بشری همانند خودمان نمیبینیم و نمیبینیم کسانی که از تو پیروی کرده اند مگر گروهی ارازل سادلوه قوم ما هستند و ما برای شما فضیلتی برخود نمی بینیم بلکه شما را دروغگو میپنداریم می پنداریم قال یا قوم ارائیتم این کنتو علا بینت من ربی و آتانی من عنده فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ نوه گفت ای قوم من به من خبر دهید اگر من دلیل و حجت آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من عطا کرده باشد پس آن بر شما پوشیده مانده است آیا می توانیم شما را به پذیرش آن اجبار کنیم در حالی که شما از آن کراهت دارید؟ و يا قوم لا اسألكم عليهما مالا إن أجري إلا على الله وَمَا أَنَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ و ای قوم من بر رساندن این دعوت از شما مالی نمی طلبم. پاداش من تنها بر خداست و من هرگز کسانی را که ایمان آورده اند از خود ترد نمی کنم همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد ولیکن من شما را قومی نادان می بینم من من الله افلا تذكرون وای قوم من اگر من آنها را ترد کنم چه کسی من را در برابر خدا یاری می کند آیا پند نمی نمیگیرید ولا أقول لكم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا این ملك و لا اقول للذين تدری اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انی اذا لمن الظالمين من به شما نمیگویم گویم که گنجهای خدا نزد من است و غیب نمی دانم. و نمیگویم گویم که من فرشته ام. و نمیگویم کسانی که در نظر شما حقیر می آیند خداوند به آنها خیری نخواهد داد خدا به آنچه در دلهای آنان است آگاه تر است قطعا آنگاه از ستم خواهم بود قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قوم گفتند ای نوح به راستی که با ما جدال کردی و زیاد همجدال و بحث کردی پس اگر از راست گویانی آنچه را که به ما وعده میدهی بیاور قال انما یأتیکن اگر خدا بخواهد آن را برای شما می آورد و شما از آن نتوانید گریخت. و لا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغيكم هو ربكم واليه ترجعون اگر خداوند بخواهد شما را گمراه سازد و من بخواهم شما را نصیحت کنم نصیحت من سودی برای شما نخواهد داشت او پروردگار شماست و به سوی او بازگردانده می شوید ام یقولون افتراه قل ان افتریتهو فعلی اجرامي و انبری آیا مشرکان میگویند پیامبر آن قرآن را بافته و به خدا نسبت داده است ای پیامبر بگو اگر من آن را بافته باشم پس گناه هم بر عهده من است و من از گناهانی که شما میکنید بیزارم و آوحی یا نوح آننه لن يؤمن من قومك اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ آننه لی یؤمن من قومک اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ خلا تبت اِص بما كانوا يفعلون. ببنو از قوم تو جز آنهایی که ایمان آورده اند دیگر هیچ کسی ایمان نخواهد آورد پس بر آنچه چکه میکردند غمگین مباش و الفلك الفلک بی ولا و وحینا و لا تخاطبنی فی الَّذِينَ ظلموا انهم مغرقون و اکنون به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز و درباری کسانی ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند و یصنع الفلک و مر علیه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون نوح کشتی را می ساخت و هرگاه گروهی از اشراف قومش بر او میگذشتند او را مسخره میکردند نوح میگفت اگر ما را مسخره میکنید پس ما نیست شما را مسخره خواهیم کرد همین گونه که مسخره میکنید پس سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخذیه و یحل علیه عذاب مقیم پس به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب به سراغش میآید که خارش سازد و عذاب جاودان برچه کسی بارد خواهد شد حتی اذا جاء امرنا و فاردتن قل نحمل فیها من كل زوجی مثنی قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل إن حالت همنن ادامه داشت تا زمانی که فرمان فرا رسید و آب از تنور جوشیدن گرفت به نوح گفتیم از هر جبتی از حیوانات دو نر و ماده در آن کشتی برگیر و همچنین خاندانت را جز کسی که وعده حلاک قبلا بر او مقرر شده است و نیز کسانی که ایمان آورده اند را برگیر و جز عده اندکی همراه او ایمان نیاوردند. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحیم. نوح گفت در آن کشتی سوار شوید حرکت آن و توقف آن به نام خداست همانا پروردگارم آمر oh, مهربان میهرمان است. و هیا بهم فی موج کل جبال و نادانو ح نبناه و کان فی معذنی یابنی ارکب یابنی ارکم معنا ولا تكم مع الكافرين و آن کشتی آنها را در موجی همچون کوها می برد و در آن هنگام نوح فرزندش را که در کنار ای بود صدا زد ای فرزندم همراه ما سوار شو و با کافران مباش باش قالت آوی الى جبلی يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين گفت به زودی به کوهی پناه میبرم که مرا از آب حفظ کند نوح گفت امروز هیچ نگه ای در برابر فرمان خدا نیست مگر کسی که خدا به او رفت کند و ناگاه موج در میان آن دو شد پس او از غرق شدگان گردید و قیل یا ارض بلعمان و یا سماء اطلعی و الماء و قضی الامر و سوت علی الجودی بعدا للقوم الظالمين و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان بارانت را فرو بند و آب فرو نشست و کار به انجام رسید و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دوری و هلاکت باد بر گروه ستمکاران و انا نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان نعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ و پروردگارش را نداداد پس گفت پروردگارا همانا پسرم از خاندان من است و بی گمان بعدی تو حق است و تو بهترین دابرانی قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَرْمُود اَيْنُوح همانا او از خاندان تو نیست بیگمان او عمل غیر صالحی پس چیزی که به آن علم نداری از من مخواه من به تو اندرز می میدهم و مبادا که از جاهلان باشی قال رب انني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم و علا توفیلی واتاقفهمنی اک میلخواینی نو گفت پربردگارا همانا من به تو پناه میبرم که از تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم و اگر مرا نبخشی و بر من ره نکنی از زیانکاران خواهم بود قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى أمم من من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم قفته اینو به سلامتی از سوی ما و همراه با برکتهای پراون بر تو و بر امتهایی که با تو اند برودای و امتهایی نیز هستند که به زودی آنها را از نعمتها بهرهمند سازیم سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها خواهد رسید تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ انَّ الْعَاقِبَةَ للمتقین اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو ای پیام وحی میکنیم. نه تو و نقامت پیش از این آن را نمیدانستید. پس صبر کن بیگمان گمان عاقبت از آن پرهیزگاران است وَإِلَى عَادٍ عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدالله ما لَكُمْ من اله غیره إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مفترون و ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما نیست و شما جز افترازان نیستید. یا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري إلا على الذي طورني افلا تعقلون ای قوم من بر رساندن این دعوت از شما پاداشی نمی طلبم پاداش من تنها بر عهده کسی است که مرا آفرید آیا خیرت نمی ورزید و یا قوم استغفرو ربکم ثمتوبو ثم الیه علیکم یرسلی السماء عليكم مدرارا و یزدکم قوة الى قوتكم و لا مجرمین به ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی او باز گردید و توبه کنید تا باران آسمانی را پی در پی بر شما فروری زد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گناه کاران روی نگردانید. قالو یهود ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی آلیهتنا عن قولک و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قول که و نحن لك گفتند ایهود برای ما دلیل روشنی نیاورده ای و ما به خاطر گفتار تو معبودهای من را رها نمی کنیم و ما به تو ایمان نمی آوریم.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 ما چیزی جز این نمیگوییم که بعضی از معبودان من آسیبی به تو رسانده اند حود گفت همانا من خدا را گواه میگیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه شریک خدا قرار میدهید بیزارم. من دونی فکی دونی جمیعا ثم لا غیر از او پس همگی برای من نقشه بکشید آنگاه مرا مهلت ندهید انی توکلت على الله ربی و ربکم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها این ربی علی مستقیم من بر الله که پروردگار من و پروردگار شماست توکل کردم هیچ جنبند ای نیست مگر آن که او گیرنده پیشانیش است بیگمان پروردگارم بر راه راست است فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَتْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ پس اگر روی به راستی که من را که با آن به سوی شما فرستاده شده بودم به شما رساندم. و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما خواهد کرد و شما هیچ زیانی به او نمی‌توانید برسانید. بیگمان پروردگارم بر همه چیز نگهبان است. و جاء امرنا نجینا هودا و آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم نجیناهم من عذاب غليظ و هنگامی فرمان ما فرار و کسانی که با او ایمان آورده بودند، به رحمتی از سوی خویش نجات دادیم و انها را از عذاب سخت رهاندیم. و تِلْكَ عَادَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوُوا رُسُلَهُ وَتَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جبار عنیم. به این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از پیامبران اونا فرمانی کردند و از فرمان هر سرکش دشمن حق پیروی کردند و فی هذه الدنیا و یوم الا این عادا كفروا ربهم علا بعدا لعاد آنها در این دنیا و نیز روز قیامت لعنت به دنبال دارند آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کفر برزیدند بر آد قوم هود دوری و هلاکت باد و الا تمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلي إن ربي قريب مجيب پس سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من الله را بپرستید که معبودی جز او برای شما نیست او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارد پس از او آموزش به سپس به سوی او باز گردید و توبه کنید همانا پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيد گفتند ای صالح پیش از این ما به تو امید می‌داشتیم آیا ما را از پرستش آنچه نیاکان من می‌پرستیدند باز می‌داری و به راستی ما از آنچه ما را به سوی آن دعوت می سخت در شک و تردید هستیم قومي ارى ايتم ان كنت على بينه من الرب واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تخسير قلت اي قوم من به من خبر دهید که اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از جانب خود رحمتی به من عطا کرده باشد پس اگر نافرمانی او کنم چه کسی مرا در برابر خدایاری یاری می کند پس شما جزیان بر من نخواهید ابزود وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذروها, فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ای قوم امان این ماد شطور خداوند است که برای شما نشانه است پس بگذاری در زمین خدا بچرد و هیچ آزاری به آن نرسانید که عذابی نزدیک شما را فراگیرد فعقروها فقال تمتعو فی داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب پس آنها آن ماده شتر را پی کردند آنگاه صالح به آنها گفت سه روز در خانه هایتان بهرهمند گردید و بعد از آن عذاب خواهد آمد این وعده است که دروغ نخواهد بود فلما جاء امرنا صالح و الذين امنوا معه و من خزی این این هو القوی پس چون فرمان عذاب ما فرا رسید صالح و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خیش از آن عذاب و از رسوایی آن روز نجات دادیم بیگمان گمان پروردگار تو همان قوی و پیروزمند است وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِبِينَ و کسانی را که ستم کرده بودند سیه فرو گرفت پس در خانه های خود به روی افتادند و مردند کَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَائِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ال بادللیسمود گویی در آن دیار نبوده اند، آگاه باشید که قوم سمود به پروردگارشان کفر میوریدند. آن بر قوم سمود دوری به هلاکت باد. ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیر بهراستی فرستندگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند سلام، ابراهیم نیز در پاسخ گفت سلام، پس طولی نکشید که گوسال ای بریان آورد فلما رآ ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و منهم خیفه قَالُوا لا تخف اِنَّا پس چون دید دستانشان به سوی آن نمی و نمی به آنها گمان بد برد و در دل از آنان احساس ترس کرد فرشتگان گفتند نه بشك ما به سوی قوم لوط فرستاده شده این و قائمه فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب و همسرش سار ایستاده بود، پس از خوشحالی خندید، انگاه او را به ازحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم. قالت یا ویلتا اعلید و انا عجوز و هذا بعنی شیخان، این هذا غدا لا شيء گفت ای وای بر من آیا من میزایم در حالی که پیرزنم و این شاهرم نیز پیر است به راستی این چیز عجیبی است قال تعجبین من امر الله رحمت الله و بركاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید فرشتگان گفتند آیا از فرمان خدا تعجب میکنی رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت باد همانا او ستوده بزرگوار است فلما ذهب عن ابراهیم الروع وجاءته جاءته البشرای جادلنا في قوم لوط پس چون ترس از دل ابراهیم بیرون رفت و بشارت به او رسید در باری قوم لوت با ما مجادله شروع کرد <سؤال> <سؤال> بیگمان ابراهیم لحليم اواهم منيب بي بردبار لا بازگشت كننده بود يا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وان ای ابراهیم از این سخن بگذر که به راستی فرمان عذاب پروردگارت فرا رسیده است و مسلما عذابی بدون برگشت برایشان خواهد آمد ولن نجاعت رسلنا لوط و چون فرستادگان ما نزد لوت آمدند از آمدن آنان نگران و دلتنگ شد و گفت این روز بسیار سختی است و قومه یهرانون و من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد و قوم او شتابان به سوی او آمدند و پیش از این کارهای زشت مرتکب می شدند لود گفت ای قوم من اینها دختران من هستند با آنها ازدواج کنید آنان برای شما پاکیز ترند و از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا نکنید آیا در میان شما یک مرد عاقلی وجود ندارد قالوا لقد علم تماما لنا في بناتك من حق وانما كلا تعلم ما نريد. گفتند به راستی تو میدانی که ما به دختران تو نیازی نداریم و تو خوب میدانی که ما چه می خواهیم قال لو أن لي بكم قوةأَ آوي إلى ركم شدديد لود گفت: کاش در برابر شما قدرتی داشتم و یا به تکهگاه ما کمی پناه می بردم قال يل بُء وصل رّكلييد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 فرشتگان گفتند لوط، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم آنها هرگز به تو نخواهند رسید پس در پاسی از شب گذشته ات را از این شهر ببر و هیچیک از شما روی برنگرداند جز همسرد که به او خواهد رسید آنچه که به آنها رسد بیگمان بعدگاهشان وقت صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها من بود. پس چون فرمان ما فرا رسید آن شهر بر سرزمین را زیرو رو کردیم و بر سر آنها سنگ هایی از سنگ و گل متراکم روی هم فرو باریدیم متومتا عند ربک و ماهی من الظالمین ببعید سنگ خائی که نزد پروردگارش نشاندار بود و این سنگ ها و عذاب از سایر ستمگران دور نیست و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ والميزان اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ و به قوم مدین برادرشان شعیب را گفت ای قوم من، الله را بپرستید که معبودی جز او برای شما نیست و پیمان و میزان را کم نکنید من شما را در نعمت میبینم و من بر شما از عذاب روز فراگیر میترسم و یا قوم اوف المکیال والمیزان بالقفط ولا لا تبخسن ناس اشیاءهم و لا فی الارض مفسدین و قوم من پیمان و میزان را با ادالت تمام و کامل دهید و اشیاء مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین و ما انا علیکم اگر ایمان داشته باشید باقی گذاشته خداوند برای شما بهتر است و من بر شما نگهبان نیستم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 گفتند ای شعیب آیا نمازت به تو فرمان میدهد که آنچه را كه نیاكان رها کنیم یا آنچه را میخواهیم در انوالمان انجام دهیم بیگمان تو مردی برد بار عاقلی هستی قال یا قومی ارأیتم ان كنت علی بینة من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اتطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ شعیب گفت ای قوم من به من خبر دهید اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از سوی خود رزق نیکویی به من عطا کرده باشد آیا نباید از او اطاعت کنم و من نمیخواهم با شما مخالفت کنم در باری چیزی که شما را از آن نهی میکنم من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمیخواهم و توفیق من جز به فضل خدا نیست بر او توکل کردم و به سوی او باز می کردم و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فأي قوم من دشمنی با من سبب نشود که به شما نیز عذابی برسد همانند آنچه که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لود از شما چندان دور نیست و ربكم ثم توبوا الین ان ربی رحیم ودود پس پروردگارتان آمرزش بطلبید سپس به سوی او باز گردید و توبه کنید، همانا پروردگارم مهربان و دوستدار است قالو یا شعیب ما نفقه کثیرم مما تقول و اینا لنرا کثینا ضعیفا؟ ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا معذير گفتند ای شعیب بسیاری از آنچه را که میگویی نمیفهمیم و به درستی که ما تو را در میان خود ناتوان میبینیم و اگر احترام قبیله ات نبود مسلما تو را سنگسار میکردیم و تُونَ از دما گرانقدر نیستی قال يا قوم ارهط اي عليكم من الله واتخذتموه ورائاكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط <تصفح> شعيب گفت اي قوم من آیا قبیله من نزد شما گرامیتر از خداوند است و فرمان او را پشت سر خیش انداخته اید؟ بیگمان پروردگارم به آنچه انجام میدهید احاطه دارد. و یا قوم اعملو على مکانتکم اینی عامل، توف تعلمون من یأتيه عذاب یخزیه و من هو و ارتقبو اینی معکم رقیب ای قوم من شما به روش خودتان عمل کنید من هم به روش خود عمل می به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب به سراغشان میآید که رسوایش کند و چه کسی خود دروگوست شما انتظار بکشید من نیز با شما در انتظارم و جاء امرنا نجینا شعیبا و الذین معه من و الذين ظلموا في ديارهم جاثمين و چون فرمان ما فرا رسید شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از سوی خود نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند سیحه ای فرو گرفت پس در دیار خود به افتادند و مردند كأن لم الا كما گویی هرگز در آن دیار نبودند آگاه باشید دوری و حلاکت باد بر قوم مدین همان گونه که قوم ثمود دور و هلاک شدند وَلَقَدْ لقد أرسلنا مُوسَى موسى بآیاتنا مُبِينٍ سلطان مبین و براست موسى را با آیات خود و دلیل آشکار فرستادیم الى فرعون و ملئهی و ما امر فرعون برشید به سوی فرعون و اطرافیانش. پس آنها از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون درست نبود یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود فرعون روز قیامت پیش روی قومش است پس آنها را وارد آتش جهنم کرد و جهنم چه بد آبش خور و جایگاهی است که بر آن وارد شدند و اتبع في هذه نعمه ويوم القيامه بثرفد المرفود فدر این دنیا و روز قیامت لعنتی به دنبال دارند چه بد عطایی است که به آنها داده شد ذلك من انباء عليك منها قائم این برخی از اخبار آبادی ها و شهر هاست که آن را برای تو بازگو می کنیم که برخی از آنها هنوز باقی است و برخی دیگر درو شده است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 و ما زادوهم غیر تطبیب و ما به آنها ستم نکردیم ولی کن آنها خود برخیشتن ستم کردند پس هنگامی که فرمان پروردگار از فرا رسید معبودانشان که به جای خداوند میخواندند پس چیزی از آنان دف نکردند و آنها را جز حلاکت نیفزودند و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرآن و هی ظالمه این اخذه أليم شدید و این چنین است مجازات و گرفته پروردگارد هنگامی که فرو و مجازات کند آبادی ها و شهرها را که مردمش کار باشند بیگمان مجازات و گرفت او دردناب و سخت است این نفی ذالک لآیت لمن خاف عذاب الآخرة ذلک یوم مجموع لهم الناس و ذالک یوم مشهور یقینا در این پند و نشانه است برای کسی که از عذاب آخرت بترسد آن روز روزی است که مردم همه در آن گرد آورده شوند و آن روز روزی است که همگی حاضر شوند و ما نؤخره الا معدود و ما آن را مدتی معین به تأخیر نمی اندازیم یوم یأتی لا نفس الا باذنه فمنهم شقی روزی بیاید که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید پس بعضی از آنها بدبختند و بعضی دیگر خوشبخت فإن النار لهم فيها زفیر و اما کسانی که بدبخت شدند پس در آتش دوزخند برای آنها در آن ناله و فریاد است خالدین فيها ما دامت و الارض الا ما شاء ربك. این ربك فعال لما یرید در آن جاودان خواهند ماند تا آسمان ها و زمین باقی است مگر آنچه پروردگارت بخواهد بیگمان پروردگارت آنچه را که بخواهد انجام دهد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 و اما کسانی که خوشبخت و سعادتمند شدند پس جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمانها و زمین باقی است مگر آنچه پروردگارت بخواهد اتا است قطع نشدنی فلا تکفی مریتی من ما یعبدها إلا كما يعبد من قبل وإن غير پس از باتل بودن آنچه اینان میپستند در شم باش. آنها نمیپرستند جز همان گونه که نیاکانشان از پیش میپرستیدند و مسلما ما نصیب آنان را بی بیکموکاست خواهیم داد ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضی بینهم و این هم لفی شک منهم و به راستی ما به موسیٰ کتاب دادیم پس در آن اختلاف شد و اگر فرمان پیشین پروردگارت نبود قطعا در میان آنان داوری می و همانا آنها در این قرآن سخت در شک و تردید هستند و این کلل ربك اعمالهم انه بما و به هر کدام چون برانگیخته شوند پروردگارت پاداش اعمالشان را قطعا به طور کامل و تمام خواهد داد زیرا که او به آنچه می کنند آگاه است پس تا اینکه م اومتو من تب معك ولا تطبغم ان بما تعملون بصی پس ای پیام همان گنه که فرمان یافته ای در برابر مشکان استقامت کن و نیز کسی که با تو به خدا رو آورده است باید استقامت کند و سرکشی نکنید بیگمان او به بی آنچه که می کنید بیناست وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَثَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا وَمَا لَكُمْ من دُونِ اللَّهِ مِنْ به کسانی که ستم کردند تمایل نکنید که آتش جهنم به شما خواهد رسید و برای شما سرپرست و دوستانی جز خداوند وجود ندارد انگاه یاری نمی شوید. وأقم الصلاة طرفين نهار و زلف من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بی پیامبر در دو طرف روز و ساعتی از شب نماز را برپا دار. بیشک نیکی ها, ها را از بین میبرند این پندی برای پند پذیران است وصبر فا الله لا یضیع اجر المحتنین به ای پیامبر صبر کن پس بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نخواهد کرد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 پس چرا از امتهایی پیش از شما خردمندانی نبودند که مردمان را از فساد در زمین باز دارند، مگر اندکی از آنان که نجاتشان دادیم و کسانی که ستم کردند از لذات دنیاوی و آسودگی پیروی کردند و گناهکار بودند؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ پروردگارت چون نبود که شهرها و آبادیها را به ظلم نابود کند در حالی که اهل آن نیکوکار باشند وَلَوْشَانَ ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين فاگر پروردگارت میخواست مردم را یک امت قرار میداد ولی آنها هموار مختلفند الا من رحم ربك ولذلك وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنت و الناس اجمعين مگر کسی که پروردگارت بر او رحمت کند و برای همین آنها را آفریده است و سخن پروردگارت محقق شد که مسلما جهنم را از همه جن و انس پر خواهم کرد و کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذکر للمؤمنين و ما هر یک از اخبار پیام بران را بر تو بازگو کردیم تا به وسیله آن دلت را استوار گردانیم و در این قرآن برای تو حق و برای مؤمنان موعظه و تذکری آمده است و قل للذین لا يؤمنون اعملوا على مکانتكم و به کسانی که ایمان نمی آورند بگو بر روش خودتان عمل کنید ما نیز بر روش خود عمل می کنیم و انتظرو منتظرون و منتظر باشید ما هم منتظریم وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فقيهی با آسمانها و زمین از آن خداست، و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود پس او را بپرست و بر او توکل کن و پروردگارت از آنچه می کنید غافل نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الف لام را تلک آیات الكتاب المبين. الف لام را. این آیات کتاب روشنگر است. إن <الف> <است> ازلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون همانا ما آن را قرآن عربی نازل کردیم شاید شما در یابید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا ایلیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین ما بهترین داستانها را با بعه کردن این قرآن بر تو بازگو می کنیم و مسلمان تو پیش از آن از بیخبران بودی از قال یوسف لعبیه یا ابت اینی رأیت احد عشر كوكبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین به یاد آور هنگامی را که یوسف به پدرش یعقوب گفت درم همانا من در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم آنها را برای خود سجده کنان دیدم قال یا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك لك این الشیطان للانسان عدو مبین یعقوب گفت ای فرزندم خواب خود برای برادرانت بازگو کن که برای تو نقشه بدی می اندیشند بیگمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است.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 من قبل ابراهیم و این و گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تأویل احادیث میآموزد و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام میکند همان گونه که پیش از این بر اجدادت ابراهیم و اسحاق تمام کرد یقیناً پروردگارت دانای حکیم است لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسالین پیش در داستان یوسف و برادرانش برای سؤال کنندگان نشانه ها و عبرت هاست از قالو لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة عصبتم ابانا لفی ضلال مبین هنگامی که با خود گفتند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان از ما محبوبترند. در حالی که ما گروهی نیرومند هستیم بیتردید پدرمان در اشتباهی آشکار است اقتلو قتل یوسف او طرحوه ارضا یخلو لكم وجه ابيكم یخلو لكم وجه ابیکم و تکونو من بعدهی قوم صالحین یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دور دست بیافکنید تا توجه پدرتان فقط به سوی شما باشد و بعد از آن افرادی صالح باشید قال من منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ينتقطه بعض السيارة إن كنتم یکی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر می‌خواهید کاری انجام دهید او را به قعر چاه بیاندازید تا بعضی از کاروانهای راهگذر او را برگیرد. بالویا ابانا ما لك لا تامن علی یوسف واننا له لناصحون. و آنگاه نزد پدر آمدند و گفتند پدر جان تو را چه شده است که ما را بر برادرمان یوسف امین نمی شماری در حالی که ما خیر خواه او هستیم ارسله معنا و, و, و فردا او را با ما به صحرا بفرست تا از میوه ها بهره برد و بازی کند همان ما نگهبان او هستیم قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون یعقوب گفت آنکه او را ببرید مرا اندوکی میکنند و از این میترسم ترسم که گرگ او را بخورد در حالی که شما از او غافل باشید الذئب و نحن اذا گفتند با این که ما گروهی نیرومند هستیم اگر گرگ او را بخورد برای تی آنگاه ماز خواهیم خاکین بود. فَلَمَّ ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَّ يَجْعَلُهُ فِي رَيَابَةِ الْجُبْبِ و الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون. پس چون او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه قرار دهند به او وحی کردیم که قطعا آنها را از این کارشان آگاه خواهی کرد در حالی که آنها نمی دانند و, أباهم و برادران شبانگاه گریان به نزد پدرشان آمدند قالوا يا زهبنا نستبق وتركنا يوسف و يوسف عند متاعنا فأکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين گفتند ای پدر ما همان ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف را نزد اساس خود گذاشتیم پس گرگ او را خورد و تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد هرچند چند راستگو باشیم وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون و پیراهان او را با خونی دروغین برای یعقوب آوردند او گفت چونی نیست بلکه هوای نفس شما کاری را برای شما آراسته است. پس کار من صبر جمیل است و بر آنچهی میگویید خداوند مدد کار من است و از سیهتون فصللو واردهم قال يا بشرا هذا غلام و أسره بضاعة والله عليم بما يعملون. و کاروانی فرار رسید و پس آنها آب را فرستادند و او دل به خود را در چاه انداخت. پس چون بیرون آورد یوسف را در آن دید صدا زد و گفت مجدبات این کودکی است و او را به عنوان یک کالا از دیگران پنهان داشتند و خداوند به آنچه می‌کردند آگاه است و شروهو بثمن بخس دراهم معدوده و كانوا فيه من الزاهدين و ترنجام او را بههای اندک چند درهم فروختند و در باری او بی بودند. وقال الذي اشترىه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عشائي فعنا أو نتخذه ولدا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 کسی از اهل مصر که او را خرید به همسرش گفت جای او را گرامی دار امید است برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی گیریم و این چونین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم و تا از تعدیل احادیث به او بیاموزیم و خداوند برکارش چیره است ولی بیشتر مردم نمی دانند و لما بلغ اشدهو آتیناه حکما و علما و کذالک چون یوسف به مرحله بلوغ و کمال قوت رسید به او حکم و علم عطا کردیم و اینچونی نیکوکاران را پاداش میدهیم و راودته هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت قال معاذ الله إنه ربی احسن متوان اینهو لا يفلح الظالمون و آن زنی یوسف در خانه اش بود از او در خواست کام جویی کرد و درها را بست و گفت بیا در اختیار تو هستم یوسف گفت به خدا پناه میبرم. بیگمان او عزیز مصر سرور من است جایگاه مرا گرامی داشته است مسلما ستمکاران رستگار نمی شوند همت به و هم بها لولا ار برهان ربه کذالک لنصرف عنه من و به راستی آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش ندیده بود قصد وینی کرد این چون این کردیم تا بدی و فحشا از او دور سازیم بیگمان او از بندگان مخلص ماست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 و هر دو به طرف در شتافتند و همسر عزیز پیراهن او را از پشت پاره کرد و در این هنگام شوهرش را نزد دریافتند. یافتند آن زن گفت کیفر کسی که خواسته باشد به خانواده تو بدی کند چیست جز اینکه زندان شود یا عذاب درد ناکی ببیند قال هيرا وبتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين یوسف گفت او با اصرار مرا به سوی خود خواند است و در آن هنگام شاهدی از بستگان آن زن شهادت داد، اگر پیراهن او از جلو پاره شده، پس آن زن راست میگوید و او از دروغ گویان است. و این کان قمیصهو قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین، و اگر پیراهنش از پشت پاره شده آن زن دروغ میگوید و او از راست گویان است فلما راقمته قد من دبر قال انه من كيدكم انكيدكم معظم پس چون عزیز مصر دید که پیراهن او از پشت پاره شده است گفت این از مکر شما زنان است بیگمان مکر شما زنان بزرگ است یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبی که كنت من الخاطئین ای یوسف از این ماجرا صرف نظر کن و تو ای زن برای گناه خود آمرزش بخواه همانا تو از خطاکاران بوده ای وقال قال نسوتن فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه اننا لنراها في ضلال مبين و این خبر به شهر رسید زنانی در شهر گفتند همسر عزیز برای کامجویی غلام خود را به سوی خود میخواند به راستی محبت در قلبش نفوذ کرده است مسلما ما او را در گمراهی آشکار میبینیم فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَحْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ کبرنه و قطعن ایدیهم و قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم پس چون همسر عزیز سخنان مکرامیدشان را شنید کسی را به دنبال آنها فرستاد و آنها را دعوت نمود و برای آنها مجلس فراهم کرد و به دست هر کدام چاقویی برای بریدن میوه و به یوسف گفت بر آنان بیرون شه پس زنان چون او را دیدند بزرگش یافتند و دستهای خود را بریدند و گفتند پناه بر خدا این بشر نیست این جز فرشته ای بزرگوار نیست قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين همسر عزیز گفت: «این است همان کسی که مرا در باری او سرزنش کردید. آری به راستی من او را برای کام جویی به خود دعوت کردم. پس او خودداری کرد و اگر آنچه را که به او دستور میدهم انجام ندهد قط زندانی می شود و مسلما خار و زبون خواهد بود. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهن واكم من الجاهلين يوسف گفت پروردگارا زندان نزد من از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند محبوبتر محبوب تر است و اگر مکر آنها را از من نگردانی به سوی آنان متمایل میشوم و از نادانان خواهم بود فاستجاب له ربه فطرف عنه کیده اینه هو السميع پس پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بازگردانید بیگمان او شنوای داناست ثم بدا لهم من بعد ما حين. سپس بعد از آنکه نشانه های پاکی یوسف را دیدند تسمیم گرفتند تا مدتی او را زندانی کنند و دخل معه السجن فتيان قال احدهما انی آرانی اعصر خمرا وقال قال الاخر انی لو ف اونقاسی خ بزنت کلو پایومین نب نبی تلی این ناکین مسی و دو جوان همراه او وارد زندان شدهاند یکی از آن دو گفت: من خواب دیدهم که انگور برای شراب میفشارم و دیگری گفت من خواب دیده که نان بر سر حمل میکنم پرندگان از آن میخورند ما را از تعبیر آن آگاه کن بیگمان ما تو را از نیکوکاران میبینیم قال لا ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي انی تركت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون یوسف گفت پیش از آنکه تعام شما را بیاورند و تناول کنید شما را از تعبیر خوابتان آگاه میسازم این چیز هایی است که پروردگارم به من آموخته است همانا من کیش قومی را که به خدا ایمان نمی آورند و آنان به سرای آخرت نیست کافرند ترک کرده ام و اتبعت ملت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 و از کیش ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام برای ما سزابار نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم این از فضل خدا بر ما و بر همه مردم است، و دیکن بیشتر مردم شکر نمی يا صاحب السجن متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ای و فقای زندانی من آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یک تای قهار ما تعبدون من دونی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شما به جای خدا چیزی را نمی مگر نام هایی را که خود و نیاکانتان به آنها داده اید خداوند هیچ دلیلی بر اثبات آنها نازل نکرده است فرمان تنها از آن خداوند است فرمان داده است که جز او را نپرستید این است دین راست و و ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان اي اما یکی از شما آزاد می شود، پس سرور خیش را شراب خواهد نوشانید، و اما دیگری پس به آویخته می شود، آنگاه پرندگان از گوشت سر او خواهند خورد، امری امریک درباری آن از من نظر خواستید، چون این مقدر شده است. وقال للذي ظن أنه ناجم اذكرني عند ربك الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ويوسف از دو نفر كه دانست رحائی گفت. گفت مرا نزد سرورت یاد کن ولی شیطان یاد کردن او را نزد سرورش از خاطر او برد پس یوسف چند سال در زندان باقی ماند و قال الملك اینی ارا سبع بقرات زمان یکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. و پادشاه گفت همانا من در خواب هفت گاب چاق را دیدم که هفت گاب لاغر آنها را میخورند. و هفت خوچه سبز و هفت خوچه دیگر را خوشت می بینم ای بزرگان در خوابم نظر دهید اگر خواب را تعبیر می کنید. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين <سؤال> خوابهای آشفته و پریشان است و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه نیستیم وقال <قالال> <قال> الذي نجا منهما و ذكر <ام> و یکی از آن دو نفر که نجات یافته بود بعد از مدتی یوسف را به یاد آورد گفت من شما را از تعویل آن خبر می دهم پس مرا به سوی جوان زندانی بفرستید يوسف أيها الصديق أفتناه افتنا فی سبع بقرات سمانی یأکلهن سبع عجاف و سنبلات خضر و اخری لعلي ارجع الى الناس چون نزد يوسف آمد گفت یوسف ای مرد راست کو در باری این خواب که هفت گاو چاق هفت گاو لاغر آنها را میخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خوشت برای ما نظر بده تا من به سوی مردم باز بازگردم شاید آنان با خبر شوند قَالَ <سؤال> تَزْرَعُونَ تَبَعَتِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ یوسف گفت هفت سال پی در پی زراعت کنید پس آنچه را درو کردید جز اندکی که می بقیه در خوش اش باقی بگذارید ثم <تصفح> یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلم ما قدمتم لهم إلا قلیلا سپس بعد از آن هفت سال سخت قهتی می آید که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید می خورید جز اندکی از آنچه که برای بزر زخیره خواهید کرد ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغا الناس و فیه سپس بعد از آن هفت سال سالی فرا می رسد که باران فراوانی نصیب مردم می شود و در آن سال مردم افشردنی ها را می پشورند. و قال لَمَّا جَاءَ الْمُرْسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ پادشاه چون این تعبیر را شنید گفت او را نزد من بیاورید پس چون فرستادی پادشاه نزد او آمد یوسف گفت به سوی سرورت بازگرد پس از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود قطعاً پروردگارم به نیرنگ آنها آگاه است قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزیز الان حفحف الحق انا راودتهو عن نفسه و انه لمن الصادقین پادشاه آن زنان را خواست و گفت جریان کارتان چه بود؟ هنگامی که یوسف را به سوی خود دعوت دادید گفتند پناه بر خدا ما هیچ گناهی بر او ندانسته این در این هنگام همسر عزیز گفت اکنون حق آشکار شد من بودم که او را به سوی خود خاندم و خواهش مرارت کرد و بیگمان او راست گویان است ذالک لی ان. این سخن را بدین خاطر است تا عزیز بداند که من در نهان به او خیانت نکرده ام و اینکه خداوند مکر خائنان را به هدف نمیرساند.